ذهی خجسته زمانی که یار بازاید به کام غمزدگان غمگسار بازاید به پیش خیل خیالش کشیدم مبلغ چشم بدان امید که آن شمشیر بازاید اگر نہ در خمه چوگان او رود سر من زه سر نگویم و سر خود چه کار باز آید مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد بدان حوست که بدین رهگزار گذار باز آید دلی که با سر زلفین او قراری داد گمان مبر که بدان دل قرار باز آید چه جورها که کشیدند بلبلان از دی به بوی آن که دگر نوبهار باز آید سنخش بند غذا هست و میدان حافظ که همچو سرف به دستم نگار باز آید